در کویر چه حیواناتی زندگی می کنند؟ در مرکز کویر تعداد کمی حیوان و گیاه وجود دارد اما اطراف آن حیواناتی مثل شتر و مار وجود دارد پس مردم اطراف کویر شتر دارند بله در روستاهای اطراف کویر کشاورزان برای انجام کارهای خود از شطور استفاده می کنند. شهرهای اطراف کویر بزرگ هستند. نه، این شهرها خیلی بزرگ نیستند. فقط کرمان، یزد و اصفهان بزرگ هستند. مردم این شهرها و روستاها از کجا آب می‌آورند؟ در قدیم آنها در زیر زمین راههایی برای آب درست می‌کردند. به این راهها چه می‌گویند؟ اسم این راهها قنات است. با آب قنات کشاورزی هم می‌کنند. فکر می‌کنم زندگی نزدیک کویر خیلی سخت است. بله، درست است. هوای گرم و خشک، آب کم و طوفان شن. اما معماری کویر خیلی جالب است. من چند فیلم در مورد معماری در کویر دیدم. بله. خانه‌های آنجا گنبدی و خیلی قشنگ هستند.